زنی برای مشاوره نزد من میآید مشکلش چیست او نوعی از علائم روده را دارد که بعضی وقتها به شکل حمله‌های دردناک ظاهر می‌شوند. او مدت هشت سال است که بیمار است و همه ها را امتحان کرده برای همین به این نتیجه رسیده که مشکلش نباید جسمانی باشد او سی و پنج ساله و مجرد است به نظر من زندگی روبراهی دارد خودش همچنین نظری دارد او با خواهرش که متأهل است زندگی می کند. آنها با هم به خوبی کنار می آیند. او از زندگی لذت می برد. تابستان ها به هومه شهر سفر می کند. خب، یک مشکل کوچک معده هم دارد. من به او میگویم چرا با آن کنار نیاید؟ چون اگر موفق شویم که این حمله هایی را که هر دو هفته یک بار به سراغش می آیند از بین ببریم، معلوم نیست چه مشکلات دیگری که زیر آن نهفته است آشکار شود. احتمالا این مکانیزم دفاعی سازگار شدن اوست. احتمالا این بهایی است که او باید بپردازد. او هرگز ازدواج نکرده، هرگزش نورزیده. بنابراین نقش خودش را کاملی فا نکرده است. هیچکس هرگز نمیتواند همه چیز را با هم داشته باشد. احتمالا او باید بهایی بپردازد. در هر صورت چه اهمیتی دارد اگر او گهگداری دچار این حمله‌های سوء حازه می شود. من هم به آنها دچار می شوم. شما هم می شوید بعضی ها سردرد می شوند و احتمالا همانطور که می دانید نه به دلایل جسمانی به عبارت دیگر سوالی نیست که آیا قادر هستیم که یک بیمار را درمان کنیم آیا می توانیم یا نمی توانیم بلکه سؤال این است که آیا باید او را درمان کنیم یا نباید او را درمان کنیم سلام علی استفاوتی هستم با برنامه پنجم پادکست 822 امروز دوشنبه 16 اومه اسفند 1395 شما زندگی روبراهی دارید؟ شما به چه چیزی رو با چه چیزی میپردازید؟ قایدتا شما هم نخش خودتون رو تو این زندگی به طور کامل ایفانه میکنید قاعدتاً شما هم نمیتونید همه چیز رو با هم داشته باشید کنشکاون بدونم گهگوداری شما دوچارت چه حمله هایی میشین؟ آیا تلاش میکنید اونا رو درمان کنید؟ یا شاید حداقل با شنیدن متنی که براتون خوندم این سوال در شما به وجود اومده باشه که شاید بهتر باشه اونو نگهش دارید اون حمله ها رو، اون دردای گهبوداری رو متنی که براتون خوندم نقل قولی بود از اوتورنگ روانشناس اتریشی جالبی که ده دوازده سال پیش یعنی زمانی که منم حدوداً سی و چند ساله بودم یه همچین دردوی مشابهی گرگوداری سراغ من می اومد که با چند تا دکتر عوض کردن دکتر آخر به این تشخیص رسید که اینا سندروم روده تحریک پذیر یا به طور مخفف IBS نامیده میشه بیماری که ریشه عصبی داره و خیلی هم شایه هست با دارودرمان و تغییر سبک زندگی و صبر و تحمل و خیلی چیزهای دیگه یکی دو سال نمیدانم چند سال طول کشید تا این بیماری کاملا در من درمان شد و خوشبختانه خدا رو شکر مدت زیادی که این بیماری رو ندارم و البته همون جوری که آقای رنگ معتقد بود وقتی یک چیزی از بین میره یک دردی از بین میره خدا میدونه چه چیزی در زیرش آشکار میشه یکی از چیزهایی که البته حالا نمیخوام بگم مرتبط با از بین رفتن این بیماری بود در من آشکار شد در یک نقطه ای و هنوز هم با من افسردگی که سالها بهش مبتلا هستم و کم و بیش از یه جایی به بعد پذیرفتم که این باشه و تلاش نکنم بیش از اون اندازه درمانش بکنم و این افسوردی گهگوداری حمله میکنه و گهگوداری خودش رو نشون میده به عنوان بخشی از زندگی من به عنوان شاید بهایی که بابت بعضی از چیزا باید بپردازم مثلا همین هفته پیش به یه نفر زنگ زدم و تلفنمو جواب نداد دوباره فرداش زنگ زدم تلفنمو جواب نداد و اونم به من زنگ نزد چند روز بعد دوباره زنگ زدم باز هم جواب نداد و این کاملا میدونست که یعنی تازه با هم تلفن رد و بدل کردیم یه آقایی که صرفاً میتونه رابطه کاری بین ما باشه و میدونی که من هیچ مزاحمتی برای هیچ کدوم از اعضای خانوادش یا نزدیکانش نمیتونم داشته باشم قاعدتاً و هیچ مزاحمت کاری یا درخواست خارج از چارچوب کاری یا مثلا بخوام پول ازش قرض بگیرم یه همچین حالتی قالالتا متصور نیست در رابطه من اون و من هنوز که هنوزه نمیتونم حدس بزنم این چرا تلفن منو جواب نده و چرا منو گار کرده ولی در هر صورت همین که تلفن منو جواب نده چندین بار بنوی منو اذیت میکنه به نوعی هفته من رو خراب کرد آیا اینم؟ اینم هم به های چیزیه که ما میپردازیم به عنوان یک و من مطمئنم خیلی از آدم دیگه هم که چون من خیلی وقت شده حتی زمانی که شما یه میسکال دریافت میکنید روی تلفن هم ده با کمی تأخیر به کسی که به شما زنگ زده <تصفح> تماس میگیرین از شما ناراحت میشه که چرا دیر زنگ زدی وای به روزی که اصلا تماس نگیرین این ممکنه باعث پایان یافتنی یه رابطه بشه باعث به همخوردن دوستی بشه این این گناه کوچیکی نیست که تلفن یه نفر رو در قرن یک جواب ندین. اصلا بخشودایی نیست. بخش... میتونین جواب ندین ولی باید بهش پیام بدین بعد ظرف مدت کوتاهی باهاش دوباره تماس بگیریم و راایی کنیم که در اون لحظه تو جلسه بودین تو دستشویی بودین خواب بودین به حالی یه عضری که، تلفن اون فرد رو جواب ندیم و الان زنگ زدیم که ببینیم با شما چی کار داشته این پدیده نوظهوری که دسترسی همه برای همه از طریق تلفن همراه ممکنه بهاش چیه؟ بهاش اینه که شما هم از دیگران انتظار دارین و هم دیگران از شما انتظار دارن دیگرانی که یک گروه تشکیل میدن که شماری هم دیگر رو دارن صرف این که شما شماره تلفن یک نگی یعنی یه نفر در مخته ای از زمان قبول کرده که شماره تلفنش رو به شما بده کافیه که ایشون در یک گروه که صلاحاً کانتاکت لیست نامیده میشه یا دفترچه تلفن یا یا هر چیزی قرار داده بشه و اون فرد ازش انتظار خاصی بره و اون فرد از شما انتظار خاصی داشته باشه کتاب خیلی جالبی دارم می خونم به نام سیپینز سیپینز این کلمی دوبوم هوموسیپینز هست که گونه ای از آدم هست که در چند ده هزار سال اخیر یعنی ما داریم زندگی میکنیم نویسنده کتاب یووال وال هراری هست و کتاب بی نذیریه. یعنی تو همین صدصفیه اولش رو که من خوندم بسیار لذت بردم و توصیح می کنم حتما شما این کتاب رو بخونید یه, یه،, یه سوال دیگم هم که من همیشه دریافت می کنم اینه که من جایی در کتاب امکان گفتم که ما یاد نگرفتیم که چجوری کتاب بخونیم و به ما یاد می دادن و یه کتابی هست در مورد چگونه کتاب خوندن و از اون, از اون زمانی که من این رو نوشتم تا الان که بیشتر از شاید گذشته. شاید بیشتر از 500 ایمیل من گرفتم که از من یا خواستن اون کتاب رو بهشون بدم یا منابعی معرفی کنم که چجوری کتاب بخونن یا خودم بهشون بگم که چجوری کتاب بخونن هرجور دلتون میخواد کتاب بخونید و فقط سعی کنید که ببینید طرف, طرف چجوری داره نگاه میکنه و چه موضوعاتی رو چجوری به هم مرتبط میکنه مهمتر از این که چه موضوعاتی رو زیر ذربینش میگیره و در موردشون صحبت میکنه مهم نحوه نگاه کردنش و نحوه رفت دادن اون موضوعات به همدیگه است خود اون موضوعات سانویه هستن نقطه اولی اینه که اون نویسنده چجوری به دنیای اطرافش نگاه میکنه جوری که آقای حراری به دنیای اطرافش نگاه میکنه به قدری برای من جالبه که اولین بار از یه کتاب تاریخی که سابتایتل کتاب هست تاریخ مختصری در باب نوع بشر یه همچین چیزی A Brief History About, brief history about Humankind از چند میلیارد سال قبل شروع میکنه ولی مدل داروینی نیست یه جوری خیلی قصه گویه شاید یه بچه ده سال این کتاب رو بخونه و خیلی راحت بفهمه اصلا کتاب تکنیکالی نیست در این حالی که شما حس میکنی که داری تاریخ می‌خونی، میکن... در این حال حس میکنی که این تاریخ <تصفيق> به نوعی زندگی شما هم درش منعکست شده و فقط یه تاریخی که خیلی شما حس کنی ازش دوری میلیاردها یا ها سال قبل اتفاق افتاده نیست این تاریخی که ارتباطش رو در نقاط مختلف مقاطع اولوشن به زندگی امروزی ما مرتبط میکنه حتی تو این چند صفحه اول که من خوندم اینجوریه تو این چند صفحه اول یه, یه ایده جالبی رو مطرح میکنه در اون بزرگ شدن سایز مغز انسان در تکامل هست در حدود چند صد هزار سال قبل که انسان بگونه این متمایز میشه از حیوانات دیگه به خاطر بزرگ شدن مغزش و همین بزرگ شدن مغز یک بهایی رو تحمیل میکنه به انسان که باید این بها رو بپردازه و اونم مرگومیر مادران در هنگام تولده به خاطر اینکه یه نوزادی رو میخوان به دنیا بیارن که کله گندهی داره و از یه سوراخ کوچیک میخواد بیاد بیرون و اصولا مادرهایی زنده میمونن که بچه هایی رو که در یعنی زودرس هستن زودتر از تکمیل شدن فرایند رشدشون در رحم مادر به دنیا میان اینا زنده میمونن و بچه هایی که کامل نشده فرایند رشدشون به دنیا میان حالا دوران مراقبت طولانی نسبت به حیوانات دیگه دارن مثلا اگر یه گربه یا یه سگ چند هفته طول میکشه که سرپای خودش باعث شکار بکنه، غذا بخوره، را بره، فرار بکنه بچه انسان چندین سال طول میکشه تا به اون درجه از مهارتها دست پیدا بکنه به خاطر اینکه برای اینکه مامانش نمیره زودتر از معاید مقرر به دنیا آمده و همین باعث میشه که ما موجودات اجتماعی بشیم یعنی یه یه ضرب هست که میگن it takes a village to raise a child یعنی به یک دهکده نیاز هست برای بزرگ کردن یه بچه بزرگ کردن بچه دیگه کار یه نفر یه مادر یه پدر نیست عمه و خاله و مادر بزرگ و پدر بزرگ و همسایه و اینا هم لازمه که کمک بکنن یه بچه بزرگ بشه و بنابراین اهمیت اینجوری اجتماع زندگی اجتماعی هوش اجتماعی و هر چیز اجتماعی شبکه اجتماعی هر چیز اجتماعی همیت پیدا کنه به خاطر اینکه زندگی ما بقای ما از از 100 هزار سال پیش دونم دو هزار سال پیش وابسته شده به اینکه در یک جمعی از ما خوششون بیاد و ما به اون جمع تعلق داشته باشیم. حالا اگر یه نفر تو این جمع تلفن ما رو جواب نده قاعدتاً این احساس خطر در ما ایجاد کنه که یک نفر از کانتکت لیست ما، داره هست میشه کانتک لیست ما به اندازه یک نفر داره کوچیک میشه و ما هم داریم از کانتک لیست یه نفر بیرون میفتیم از یک جمعی داریم خارج میشیم هرچقدر اون کانتک لیست بزرگ باشه مایم نیست در حیوانایی که به شکل حیوانای دیگه ای برز انسان که به شکل گروهی زندگی میکنن مثلا مثل شام... شامپانزه ها چیمپانزی شام... شامپانزه شامپانزه درسته؟ آره شامپانزه ها اینا جمعی نهایتا پنجاه نفر میتونن داشته باشن و وقتی یه گروه بزرگتر از 50 نفر میشه رهبری گروه دوچار مشکل میشه گروه به هر جمعه اج میفته و معمولا رهبر یه به دیگه پیدا میکنه و گروه دو دسته یا سه دسته میشه و گروه میشکنه به گروه های کچیکتر. بیشترین عددی که برای گروه شامپانزه ها سبت شده مثلا 150 نفر هست که اونم خیلی نادره امدتا بین 25 نفر تا 50 نفره ولی گروه های انسانی ملت های انسانی تا چند صد میلیون نفر یا حتی بیش از یک میلیارد مثل چین و هند میتونن باشن حول یک ملیت حول یک مذهب حول یک ایدئولوژی خوله یک اقتصاد خوله یک شرکت اسم یک شرکت مثلا همه کارمندان ایران خود رو یا همه کارمندان یه بانک چند ده هزار نفر صرفا به دلیل اینکه در یک بانک کار میکنن اینها متعلق هستند به یک گروه و تحت رهبری مدیریت اون بانک کارشون رو انجام میدن همین این دوستانه رو گفتم که بگم من خوندن این کتاب همزمان شد با اینکه اون بابا تلفن من رو جواب نداد و من یه مقدار حس بهتری پیدا کردم و تصمیم گرفتم که دیگه این ناراحت شدن و از اینکه کسی تلفنم رو جواب نمیده نخوام درمان بکنم و این رو بپذیرم که اوکی وقتی یه نفر جواب نمیده من ناراحت میشم و یه نفر میتونه تلفن من جواب نده و منم میتونم یه تلفن یه نفر جواب ندم اگه یکی دو هفته صبر کنم و این احساس منفی رو تحمل کنم کم کم از به میره و فراموش میشه نیازی به تحلیل روانی بیشتر از این وجود نداره در هر صورت دیگه چیکار کار کردم این هفته دیروز نوم پختم بعد از مدتها به لخره نوم پختم و به نظر من به نظر من همه باید نون ببزن این بهترین کاریه که یادم میتونه بکنه و چقدر این کار لذت بخشه اگر تا الان نپختید نون این،, این کار بسیار سادهیه خیلی کار راحتیه اگه کار سختی بود من انجام نمیدادم من تا الان قرمه سبزی نپختم تا الان هیچ غذای سختی نپختم و پختن نون حتی از درست کردن نیمرو راحت تاره. دستورش حداقل این رسیپی که من پیدا کردم از روی اینترنت این شکلیه که این این نون بدون ورز دادنه یعنی نون نید بریده نیدینگ به معنای ورز دادنه کاری که باید بکنید اینه که سه تا پیمون آرد یک قاشق و نیم چایخوری نمک و نصف قاشق چایخوری مخمر نون اضافه میکنید توی کاسه بزرگ اینا رو خوب با هم مخلوط می کنید و اشتباه نکنید این پادکست قرار نیست تبدیل به پادکست آشپزی یا شیرینی فزی بشه صرفا به خاطر اینکه من خیلی از این تجربه لذت بردم دارم رسیپیش رو بهتون میدم اینا رو مخلوط میکنید قشنگ و بعد یک پیمانه و نصفی آب کم کم اضافه می کنید به مخلوطتون و خوب هم می زنید خمیر که به شکل نسبتاً یک نواختی در اومد حالا اگر یه دوتا قاشق آب بیشتری نیاز داشت این بسته به آردتون ممکنه متفاوت باشه ابتون من کلا یه بار این پروسه رو انجام دادم رسیپی رو اینترنت اینجوری نوشته بود خودتون هم سرچ کنید حتما پیدا میکنید انبا اخصامش ویدیوش هم روی یوتیوب هست خمیرتون که بالت یک نواخ در اومد روی کاسه تون یه پلاسیک میکشید یا سلفان و میذارید دوازده تا هیجده ساعت بمونه من گذاشتم هیجده ساعت موند بعد از گذاشته هیجده است یعنی سهانیم بعد از زهر که من درست کردم خمیرو نهانیم فردا، نهانیم صبح فردا که شد هیجده ساعت خمیرتون رو از یه سطحی هیرو یکم آرد روش می‌ریزین آرد میمالین روش مثل یه سینی یا یه سطح چوبی یا کانتر آشباز بعد این خمیر رو از کاسه در میارین میدازین نون رو و این رو به شکل چونه اگه چونه نون رو تو نونبایی یادیده باشین به شکل گلوله در میارین دستتون هم آرد میزنین که نچسبه به شدت چسبناکه این خمیر اینو چونه میکنید و میذارینش روی یه هوله ای که روی اون هوله هم یا یه دستمالی که روش یکم آرت آرت زدین و روش رو دوباره یه دستمال دیگه میذارین یا اگر اون دستمال بزرگه تا میکنید روش میذارید دو ساعت دیگه بمونه یک ساعت و نیم دیگه که نیم ساعت مونده اون دو ساعت تمونشه فرتون رو روشن میکنید و در دمای 234 درجه سانتیگراد میذارین خلو... که میشه 450 درجه فارنهایت به مدت نیم ساعت گرم بشه فر و داخل فر یه دونه ظرف که میخواید نونتون رو توش بپذید مثل یه ظرف چودنی یا ظرف کیک درست کردن یا نمیدونم یه ظرف پیرکس از اول میزنین تو فر بعد از نیم ساعت این ظرف رو در میارین و دستتون رو میزنین زیر حوله که خمی روشه و خمیر رو تلپ میدازین توی ظرف ظرف رو دو سه تا تکم میدین که خمیر یک نواخ توضیح بشه توی ظرف و روی ظرف رو با فویل یا یه درخوشی چیزی که داخل فر بتونه بره میذارید و نیم ساعت با همون دما اجازه میدید که نون بپزه بعد از گذشتن نیم ساعت درش رو بر میدارید یعنی هر چیزی که روی ظرف گذاشتین رو بر میدارین ده دقیقه یه رو به دیگه بدون در نونتون میپزه و بعد از این کنونتون نونتون پخت ظرف نونتون رو از در میارین و میذارین یه جا خنک بشه این میزان زمانی که برای پختن نون شما صرف میکنید بجز این که فواید خیلی زیادی داره یعنی میتونه مدیتیشن حساب بشه میتونه لذت بردن از یه فرایندی که سر تهش رو شما میبینید برای خیلی ممکنه نو باشه و سرف نظر از همین لذت های جانبی که داره شما کنترل زندگیتون رو به دست میگیرین یعنی با همین سرف این چند ساعت بهای داشتن کنترل روی یکی از مهمترین قسمت های زندگیتون یعنی چیزی که میخورید رو به دست میارید تقریبا به خصوص نونایی سنتی که من اخیراً تست کردم همشون به نوعی در حد اشکال کیفیتشون پایینه امیدوارم از این کلمه که من در مورد نون به کار میبرم <تصفح> تو این پادکست معنی یا ناراحت نشن ولی واقعا نونواها حداقل اکثریتشون که من ازشون نون می‌خرن کوچکترین اهمیتی به کیفیت نون و این چیزی که این همه اهمیت داره در رژیم غذایی اکثر آدما نمیدن و به روش بلتی خمیر درست میکنن به روش قلطی میپزن و به روش قلطی این رو در اختیار ما قرار میدن بخشیش سوخته است بخشیش نپخته است و نه اطر نه نون داره هیچ چیز خاصی نیست یه،, یه ورقه ای از فیبره که ما میخوریم و هیچ خاصیتی هم ممکنه داشته باشه بجز این که حالا آردی هم که درش مصرف میشه آردیه که خیلی داستان داره و همه چیز این آرد در یه فرایند عجیب قریب سنتی ازش جدا شده سبوسش و خیلی چیزهای دیگرش که ما حتی هم نمیدونیم مثلا یه دوستی دارم که دارم میگفتش که اون قسمت از گندم یا جو که در حقیقت جوونه این بز رو حمل میکنه رو در یک فرایند پیچیده از آرد جدا میکنن به خاطر اینکه نگهداریش آسون تر بشه و همون در مزه و بوی آرد خیلی تاثیر می‌ذاره و خلاصه اگر شما بخواین چیزی بخورین نونی بخورین که این اتفاقا براش نیفتاده باشه چاری نداریم بجز که خودتون این نون رو بپزین بب... بب... اه... کسی دیگه‌ای نیست در این شهر که چون این نونی رو برای شما بپزه و بعدم فرایند نون اه... مثل مثل فرایند آشپزی که بعضی ازش لذت میبرن ممکنه لذت بخش باشه آشپزی هنوز برای من لذت بخش نشده به خاطر اینکه شاید شاید سخته و تنبلی من اجازه نمیده که آشپزی بکنم <تصفيق> به جز تعداد محدودی غذا مثل عدس بلو کباب و دیگه چی درست میکنم دیگه چی درست میکنم؟ تقریبا همین، تقریبا تقریبا این قضاهایی که درست میکنم عدس پلو و کاب دابی همه خورشت ها برام بسیار پیچیده است. هنوز امتحان نکردم شاید به زودی آبگوشت هم درست بکنم اون به نظر ساده میاد خوبیش اینه که همه چون میریزی و میذاری میپذید حتی شاید قرم سبزی هم همینجوری باشه یعنی اگر خوب نگاه بکنی همه غذاها همینجوریه شاید به خاطر تعداد علمان هاست نمیدونم شاید به خاطر اینکه هنوز امتحان نکردم و یه قضاوت اشتباهی در موردش دارم احتمالا همین حالت آخره در هر نون که داشت توی فر میپخت یه بوی گندی از فر ما بلند شد من فهمیدم که چند وقت پیش ما مهمون مهون داشتیم و یک غذای قضای... آها اونم یه غذای دیگه است که من بلد بودم درست بکنم و قول میدم که هرگز دیگه درستش نکنم این یه جور مرغ درسته است که شما در ما تحتش یه کن آبجو نصفه میذاری یعنی مرغ رو که روغن زیتون و ادویه اینا به پوستش میمالین فلفل و اینا سبزیجات مرغ رو به شکل ایستاده ا میذاریم روی یک قوطی نصفه ماشهیر و این رو به توی فر بذاریم که نیفته چون مرخ سنگینه و این قوطی آب آبجو سبک به امکان داره این بیفته تریکش همینجاست و ما چون دو تا مهمون داشتیم دو تا از این مرغا گذاشتیم توی فر بعد از چند دقیقه اینا جفتشون افتادن و یک کسافتی اونجا درست شد توی فر که بو و دود کل خونه رو برداشت و مهمون داشتن خفه می شدن در وسط زمستون همه پنجره رو باز کردیم و یک صحنه بسیار خجالت آوری به وجود اومد که همش هم من بود در هر صورت با صبر و بزرگواری مهمون تحمل کردند و تا این مرغ پخت ولی مزش خوب میشه که کسی که ما دوست داره این میتونونه قضیه خیلی خوبی باشه بسیار هم ساده شما یه مرغ درسته رو میگیرین بدون که پوستش رو بکنین یا فقط برشکانش خالی شده باشه یه قوتی موشعی رو نصفش رو میریزین توی لیوان میذارین روی فویل که روی سینیه فره و مرغ هم ایستاده فرو میکنید از ما تحت توی اون قوطی آوه جماعی و توی همین دمایی 245 درجه سانتیگراد فکر میکنم یک ساعت یک ساعت رو باید بپزم در ساعت آثار اون چربی های مرغ هنوز به فر مونده بود و من هنوز تمیزشون نکرده بودم و دیگه از فر استفاده نکرده بودیم تا دیروز که من میخواستم این نون رو بپزم و من فکر میکنم بقیه اون آثار چربی دیروز در اون یک ساعتی که فر حرارت میدید سوخت و دود شد و از پنجره باشم از ما رفت بیرون اواخر این فرایند من فکر میکنم بو خیلی کمتر شده بود یا اینکه شاید بینی من عادت کرده بود حالا بعد امروز یا فردا یکی فر روشن کنم ببینم بوش در میاد یا نه اگر نه مجبورم که با هم فر رو این دفعه تمیز بخوام و بعد من کلم مرغ خوردن رو گذاشتم کنار یعنی چند وقتی است که دیگه مرغ نمی‌خورم به خاطر این همه چیز بد که از مرغ میگن و یه دلیل دیگه من فکر می‌کنم سن یعنی سن آدم که بالا میره عادت‌های غذاییش به شکل رادیکالی عوض میشه به خصوص بعد از چل اصلا من فکر نمی کنم که کسی در 20 سالگی به جز هایی که من نمیخوام باشون با آشنا بشم اهمیت زیادی بدن به غذا خوردنشون یا اصولا سلامتشون توی 20-25 سالگی آدم فکر میکنه که تو عبد در سلامت زندگی میکنه سیگار میکشه غذاهای چرب میخوره من،, من یه دونه پاچه، یه دست یعنی کلده پاچه تنهایی میخوردم یا سی چهل سیخ جگر گوسفند میخوردم یا سه تا بوشباب پولو با هر چیزی که خورشی که بود میخوردم و الان که به اون دوران فکر میکنم خودم خندم میگیره یا خجالت میکشدم که چجوری یک آدم مثلا در حد 65 کیلو میتونه این همه غذا توی یه وعده بخوره و بعد هر روز سه وعده غذا بخوره و و بعد از یه مدتی این به خصوص بعد از پنج سالگی یعنی زمانی که شما شروع میکنید به پرداخت بهای بعضی از چیزها این بهای بیشتر شد تا اینکه مر خوردنم کم کم کردم کم کردم کم کم گذاشتمش کنار الان ترجیحبا به صفر رسیده صفر مطلق نیست اگر جای باشم که غذا مرغ باشه نمیگم من مرغ میخورم گیاه خار نیستم ولی ترجیح هم اینه که مرغ نخورم و به شما توصیه نمی کنم که نخورید یا بخورید اگه میخواد بخورید اگر میخواد نخورید ولی توصیهم کنم نون بپذید واقعا توصیه کنم نون بپذید نونتون خودتون بپذید و امیدوارم که من این کاری که دیروز کردم رو تکرار بکنم. به خاطر اینکه هیچ نونوایی ه ساعت تحمل نمیکنه که خمیرش اصلاح ور بیاد یا همچین چیزی اصللا خمیرش آماده بشه. این مخمرهایی که در یک فرایند شیمیایی خمیر رو تجزیه می کنن و یه اتفاقای اونجا میفته به شکل عجیب و غریبی کیفیت نون رو بهتر میکنن و وقتی شما خودتون. با دستای خودتون این نون رو از فر در میارین و این نون داغ رو تیکه میکنین یه که بسیار استثنائیه یعنی من این رو در آماده شدن غذا حداقل خودم شخصا حس نکردم یه چیزی در حد معجزه میمونه خیلی خیلی لذت بخشه این داستان نون پختن من بود و با این داستان میتونم بگم که من زندگی رو به راهی دارم و این روبره هم از کلمه well adjusted ترجمه کردم یعنی به خوبی وقتی یه نفر به خوبی میتونه زندگیش رو اجاست بکنه و این اجاسمنت من فکر میکنم مقدار زیادیش با آدمای های دیگه است به خاطر اینکه ما خیلی الان دیگه با محیطمون مثل 60 هزار سال پیش سرکار نداریم که با باد و طوفان و جاذبه زمین و خشکیسای اینا بخوایم خودمون رو بکنیم نه که این مشکلات هنوز نیست یا سکیلش بزرگ بیشتر نشده. هست هنوزم خیلی اجاسمنت نیازه با ریزگرد ها در جنوب کشور با کم آبی در کل کشور با چه میدونم؟ هر چیزی. برای بیشتر وقتا چیزی که در سطح مایکرو بهش برمیخوریم یعنی در زندگی روزمره بهش نیاز داریم اجاسمنت با آدم های دیگه است در یک گروه بزرگی ما زندگی میکنیم که قرار هر کاری رو یه به شکل تخصصی انجام بدن نون رو قرار نونوا به ماشین رو قرار شرکت خودروسازی تولید بکنه گوشت رو قصاب به شما بده و میور و کشاورز یا باغدار تأمین بکنه منطقه در این هین وقتی که همه این آدم ها در این گروه به یک ایدئولوژی بسیار یک پارچه یک و جهانی به نام اقتصاد و اقتصاد از نوع خودش اعتقاد دارند و همه اینها با میشه گفت مذهب افیشنسی در یک گروه قرار میگیرند تضاد منافع زیادی به وجود میاد یعنی نونوا بر این که باشه آردش رو از آسیابی میگیره یا از سیلوی میگیره که اون سیلو بر این که باشه گندمش رو از کشاورزی میگیره که اون کشاورز برای این که باشه و سودش رو مکسیمایز بکنه بزره تراریخته میکنه و کود شیمیایی استفاده میکنه و بعد اون آسیا بر برای این که باشه همه چیز آرد رو از آرد جدا میکنه و یک چیز فقط یک علمان اساسی آرد رو که تقریبا میشه گفت صرفا نشاسته است به نونوا میده و نونوا با اون آرد, آرد خمیر درست میکنه و بعدن اگر مشتری بخواد میتونه روش سبوس بپاشه یا سبزیجات بپاشه یا کنجد بپاشه هر این چیزا که کل فرآیند افیشنت بهرهوری بالا مولای در ذهن کدوم از قسمتای کار نمیره ولی شما که به عنوان مصرف کننده در آخرین نقطه حلقه مصرف این نون رو می خرید می خورید یا اون گوشت رو می خرید می یا اون ماشین رو سوار میشین شین احساس روبه راه بودن نمی کنید احساس نمی کنید که شما اجاست هستین با اون گروهی که حتی خود شما با عنوان فردی از اون گروه دارن به شکل افیشنتی آپریت می کنن. دارن به شکل افیشنتی کار و تعامل می با هم دیگه قسمت ناراحت کننده دا داستان اینجاست حالا اگر شما بخواییم زندگیتون روبراه بشه یا ول adjusted بشه چاری نداریم به جز اون قسمت هایی که براتون مهم هست و قادر هستین که خودتون تحت کنترل بگیرین اون قسمت ها رو خودتون انجام بدیم خیلی زیاد نیست مثلا بعیده که شما بتونید خود روتون و خودتون تولید کنید بعیده که بتونید اگر شیر نیاز دارین مثلا یک گاو نگه دارید و براش علوفه بکارید یعنی مثلا یه هکتارم زمین بگیرید اونجا علوفه بکارید بعد یه دونه گاف اونجا ول کنید که آزادانه بچرخه که مثلا شیر با کیفیتی به شما بده اینا خیلی دور از دسترس صددرصد برای به نظر میاد ولی اون چیزایی که شدنیه یعنی مثلا در حد پختن نون یه نفر میتونه انجام بده من فکر میکنم این اینا کمک میکنه به یه مقدار اجاستمنت بیشتر در مواجهه با خیلی عظیمی از آدم ها که به هیچ چیز بجوز بهره‌وری و حداکثر کردن سودشون فکر نمی‌کنن و نمی‌تونن فکر بکنن به خاطر اینکه اگر فکر بکنن از اون گروه رانده میشن و این بهای گزافیه که کمتر کسی حاضر به پردازه ترسش معادل ترس از مرگه رانده شدن از گروه حذف شدن از کانتکت لیست وقتی که صرفاً اگنور کردن یک تماس تلفنی روزها ذهن شما رو من مشغول میکنه و به شما حس منفی میده حالا چطور میتونه در سطح گسترده تری رانده شدن از گروه به شما این حس رو نده و شما نترسید و شما از صبح که پامیشین فکر نکنید که چجوری تعلقتون رو به یک گروه بزرگ ایجاد بکنید حفظ بکنید و تضمین بکنید در هر صورت امیدوارم عروج من از گروه گروهی که گروهی که حاضر نون، نونی بخره که نه ارزش قضایی داره و نه کیفیت و نه ظاهر و نه بو و نه مزه امیدوارم این دوستان باعث خ... باعث ترد شدن من از اون گروه نشه امیدوارم اون گروه اینقدر بهشون بر نخوره که من رو از کانتکت لیست خودشون هست فکنن. و دیگه به این پاکست گوش ندن به خاطر اینکه خود همین امکان داره دوباره نگرانی هایی در من ایجاد بکنه و باعث آشکار شدن مشکلاتی نهفته در زیر مشکل اجاسمنت من با این توصیفی که گفتم بشه امیدوارم من این حب رو با داشته باشم که به اندازه پختن یک نون اجسمت خودم رو بیشتر بکنم و زندگیم روبراه تر از اینی که هست و بابت این کاری که کردم به های گزافی نپردازم ایمیلی از شما به آدرس 822, -822 در هفته که گذشت دریافت نکردم که بشه در این پادکست بهش شرکت. کرد اگر داستانی دارید که میخوایید تو این پادکست به اشاره بشه به آدرس 822 اتحالیسخواتی.com ایمیل بفرستید یا روی وبلاگ من زیر مطلبی که این پادکست درش منتشر میشه کامنت بذارید اگر هم موضوع خاصی مد نظرتون هست که دوست دارید و میتونید در موردش حرف بزنید. میتونیم در یک پادکست جانبی با یکی دو نفر دو سه نفر که اون موضوع براشون جالبه مهمه و قادر هستن در موردش گفتگو بکنند یک کنفرانس تلفنی ترتیب بدیم که شما از هر جایی که باشید در اون کنفرانس تلفنی شرکت بکنید و گفتگوی اون کنفرانس ضبط بشه و به شکل پادکست جانبی مثل یه پادکست جانبی که داشتیم منتشر بشه تا هفته بعد خدافز